روسری آبی کارگردان و نویسنده رخشان بنی اعتماد تهیه کننده مجید مدرسی موسیقی احمد پجمن محصول سال 1373 موسیقی عزت الله انتظامی هیچکس تا تنها نباشی نمیتونی بفهمی تنهایی یعنی فاطمه معتمد آریا وقتی قرار هیشکس ندونه حلال و همسر شما چه فرق میکنه اسممو جایی بنویسن یا نه گلاب آدینه دیگه مخا معلوم نشه جمشید اسماعیل خانی باورم افتاده بی برادر تو مثل معصوم اونم با خودشونو افسر اسدی اگه این یکی دو روز در هفته که شما میای پیش سر زنی خیلی خسافت کرده نیا عزیز من نیا نادیا گلچین ماشاءالله با این قطعش همه منعطف کرده، حالا نمیشه بیاد پیشی یکی از مو. رضا فایاضی نمی‌دونم، زرر از هر جا بیگیری به و لازیر برای این فشار دکم بیکن. بهناز جعفری کاش از زیاد نمی‌کرد، از زندگی خودش میکنه من سعی می‌کنم بچه‌ها فرهاد اصلانی خواهی که به نام تاریخ خودمان. ای کجا و زنده یاد مهری مهر نیا شما در پاکی و صداقت همیشه توی فامیلی زبون محلی در حومه شهر تهران کوره های آجرپزی دیده میشه از دور تعدادی زن که چادرای رنگی سرشونه یه گوشه جمع شدن یه وانتبار به اونا نزدیک میشه راننده و یه زن از وانت پیاده میشن میرن طرف زنها راننده چندتا زن رو جدا میکنه و به هر کدوم میگه تو برو و به ماشین اشاره میکنه که یعنی برو سوار وانتبار شو زنها به طرف وانت میرن به نظر میرسه دارن این زنها رو برای کار به جایی میبرن ماشین حرکت میکنه و از راهی که اومده بر میگرده اینجا یه مزرعی گوجه فرنگیه افرادی مشغول کار توی مزرعن وانتباری که زنا رو با خودش آورد وارد جادی خاکی وسط مزرعه میشه و به طرف انتهای مزرعه که ساختمانی اونجا دیده میشه میره اینجا محوطی باز جلوی ساختمان بزرگیه ماشینایی رفته آمد میکنن یه ماشین نگه میداره که مرد میانسالیه پیاده میشه مرد یه ظاهر آراسته و شیک و پیک و مرتب داره در اون میبنده. یه مرد جوون که گوسفندی رو دنبال خودش میکشه به مرد نزدیک میشه و به آجا. اون میگه ده ده این که این شده راه را مرد میانسل به راه میافتی دیگاه بزرگی رو روی آتیش بار گذاشتم. یه مردای مشغول بود و تدارو که یه میان یه نفر یخ میشکنه یکی گوش تیکه میکنه یکی گوشه سیخ میگیره مرد میرسته به چندتا مرد جوون که دارن صندوقای گوجه فرنگی رو از پشت اتاق ماشینی بر میدارن و میرزن توی یه دستگاه گوجه فرنگی ها از روی نقالی رد میشن اینجا به نظر میاد یه کارخونه تهیه رو به گوجه است. مرد میانسال که به نظر صاحب این کارخونه است با دست به سطحای بزرگ آبیرنگی اشاره میکنه که گوجه له شده توی اوناست با نگه بیگ سطح سطحه میزنه و اونو میمدزه زمین با پا میکبه رو گوجه ها اینجا عشباز ها مشغول تهیه قضایه میخونمه میانساد که چند زمین جوان پشت سرشی دارن میان. این زن که به نظر سرفرست کارگره هست اسمش قدرتی مرد میانسل داره تلفنی صحبت قدرت با زنوی جوان میرن طرف سال آقا، برای چی ای بابا چه تنهایی مگه همیشه چیکار کار میکن؟ ببینم چه میشه خدا بزن نیزن داری این که چند جبه گوشه فرنگی توشه به سختی نگم بادا جان نرخ نظر این روز تو شب نمیشه اینا کوجه نچینه تو وقیه اینجا چه کارین که نیمونم برایتشو داری حق تقدم با علمان داشت آدرس خاتون بعد شهرک متری. نفر بعد نوبر کردانی آها آه پس این نوبر کردانیه که روسری آبی سرشه دختر جوون و زیبایی دغل شوهر؟ شوهر نکردم مجرده نفره با. چرا نفر بعد؟ چرا نفر بعد؟ گفتم شوهر نکردم، نگفتم تنهام. خریج سه نفر رو میدم. خونمم به اینجا نزدیکه. کارم هم خوب بلدم از خودت بپرس. دیگه چه حرفیه؟ مرد میواصل از پنجره به بیرون سر میکشه و با تعجب به روسریابی نگاه میکنه. از قا چند نفر؟ هشت آقا. سخزگیر، اسمش حلب آدرس نعمت‌آباد خوره خان. <تصفيق> انگار از جسارت نوبر خوشی خوشیشوند. وقتی نهار شده زن‌ها و مردم مشغول چیدن سفرهی سرتاسری بزرگی‌اند. صاحب‌کار با چند تا مرد که پشت سرشان دارند میاد. زنای کارگرم آمدند. همه میشینن سر سفره گوشت قربانی رو کفر یکیسای پلاستیکی به کاریران میده از به نوبر دو بستی گوشت میده برو برو یا. چرا به این دوتا دادی به من یکی؟ من سبا هم بیشتری یا این جوجه دروزه نه نباشه به صاحبه نیست یه نفره به نفر نیست بگو به چشم عبروه نوبر بهش برمیخوره کیسای گوشت رو پرت میکنه تو سینیه دم دست اسقر رو میره اسقر به رفتنش نگاه میکنه نوبر سواری مینیبوزی که سرویس کارگراس میشه ماشین حرکت میکنه غروب شده افرادی مشغول تمیز و جمجور کردن محوطی جلوی کارخونه از دوتا کسی پلاستیکی گوشت دستشه آه. اجازه میدید من برم؟ منم ببر فرو فروب خرسم میخواستم این ببرم آن این نختره از کردنه زراخان سر صدا رو انداره اونم بوشتشو نبود اونه کجا؟ سر راه راهه جدی بیرون شهری کوره های آجورپزی دیده میشن ماشین سابق کارخونه وارد نعمت آباد محل زندگی نوبر میشه نگه میداره اسقر پشته فرمونه سابقرم کنارشه اسقر پیاده میشه تاریک شده یه تعدادی بچه دور ماشین سابکار جمع شدن اون روی صندلی خوابش برده و بچه ها همینجوری بهش زل زدن از خواب بیدار میشه بچه ها رو میبینه به ساعتی روی موچش نگاه میکنه مثل که خیلی گذشته از ماشین پیاده میشه در رو و کوچولو کچونو نگاه میکنه بچه ها کردونی کسی جواب نمیده حرکت میکنه میره طرف یه کوچولو که لام پیدمه درش آویزونه خوردانی دارین اینجا آره چیه گنبال هم که گوشت آورده او با اونا آخه دختره کارگر کارخونه آه نوبر no پشت سر پیرمرد اصلا دست را افته میرن طرفی خونه تا چند وقتی پیش همینجا کار میکرد با تا زنده بود اینجا بود گفتن از دست زنش دیر کرد زنه کارش یاد نه عملیه میکوبه بدر، در واکم غریبنی؟ میکرسه سلام نوبره میخواد خونه یه اتاق محقر و کچونوه یه زن سیگار به دست و یه دختر بچه تو اتاق یه پسر نوجوان میاد کنه من باب داریم دوباره کسی که اماده بود سراغش ببریش سراغ ننه سلطنه گفتم ببرش کنه خواه زن سنگی به طرف پسر پرت میکنه من ببرمش ببر پسر میره بیا ببرمت من سوالتون وقتی آنش خراغ پوشه ایسی که نمیکنه بهش دست بزنه. آتیم که میره دست شدیتری میگیره پشت گردمی سرشون بره بالا انگاششون میکنه که گروش ندونم یه ها استفراغ میکنه بعد هی اوخ مزنه اوخ مزنه بعدش هم میکنه که پیال حال اونجا. آقا بمخشید گیر افتادم مرد سابکار میره تو چند زن نشستن نوبرم هست داره پشت پیرزن لاغری که سرش روبه صخفه و دهانش همینجوری مونده رو ماساژ میده. نوبر رو سری آبیش رو رو سرش مرتب میکنه. صابکار با تعجب و حیرت به اون نگاه میکنه. نوبر نگاهش رو از مرد می دزده. صابکار برگشته خونه بیری طرف میزی که تلفن روشه عکس یه خانم میانسار قاب شده کنار تلفن. مرد دکمه پیغامگیر تلفن رو میزنه آقا جون سلام زنگ نگران نگرفان بفرفتیم ما منتبه اتون آقا جون هنسیم سلام ما شام میخوریم تا بیاییم ای ایم آقا جون سهد در این کجایی درمو شروع تا رسید اون خوده من زنگ رزنیم مرد در یخچه رو میکنه رفتی تو فکر با خوشحالی روی تخت یه نفره دراز میکشه صبح شده مرد هوله به دست و دوش گرفته از پله ساختمان میاد پایین هولار رو رو بند پهن میکنه مشغول آب پاشی خونه میشه زنی قابلمه به دست نیاد قابلمه رو زمین میذاره سلام آقا جم سلام فروخانم باشی خود به زحمت انداختی چیزی نیست شیرکونهای عیده و هی کم خوردریز فریزرین دیشب چرا نیومدی؟ خیلی منتظر یه زن که بچهی بقلشه اومد خیلی خسته بودا قربونو به بدقولم برم الهی سلام. سلام. ببغالم عزیز بابا تو رو نمیگم اینو میگم. <تصفيق> عزیز بابا دو هفته دیگه میام. حالا دوستا نمیده شروع کردی. خب هر گلی برای خودش یه بویی داره. آری ولی افتخار. گل سرسبد پدر است. آ چی یکی از, از دخترها در بسته‌ی پذیرایی و باز کرد. پرده‌ها رو کنار میکشه روی همه مبل‌ها ملافه سفید کشیده. قرمت مادرتون برای من بیشتر از اینا ارزش داره. اگه واقعا آقا هم از این کار راضی میشه هزار برابر بیشتر براش بکردن پس اجازه بدین امسال مرسوم رو تو خونه خودم برگذار کنه یا اون توی این خونه زندگی کرده من هم سرپام و خونه داماد سال بگیرن دستشو ها درده به هر حال اینا رسم و رسومه نه نه اینا رسم و رسوم نیست اینا ع منه من یه رو انداختن 100 تا آدم بی‌نیازوشو جمعش رو دعوت کردم که نشد رفت رو دستون چهار تا خانمای فامیل دور هم جمع بشین یه فاتحه بخونیم خرجشام بزنیم بزرقو چهار تا آدم وسط. باباجونم شما کی این همه ریخت و پاش میکنی این حسابگریو بتون نمیادم اینو بهش میگن حسابگری یا چون نمیخوام افتارم دست شما بدم حسابگرم. در حال ما هرچی میگیم برای خودتونه. آره برای, برای این چله که پله که بپرشم بذارم تو بانک بیام ورداری در شما بشینم <تصفيق> ما کی برای شما تعیین تکلیف کردیم ما که هر اداره کردن کارخونه که بیشتر از سودشه قبول نداریم اون کارخونه منه این نمی‌تونین بفهمین ارث پدری که نبوده نتیجه جون کندن هم زحمت کشیدن هم بوده آدم لاابالی که نبودم خب حالا نمی‌تونم بیار بگردم ای به شما مبارک سلام سلام مخلصیم یا شما شما ماشینی سابکار داره از تو جدی مدرسه حرکت میکنه و رد میشه آه. نوبر به ماشین خیره شده نوبر تو دفتر کارطونه ایستاد مقابل میز سابکار. همین خور برادار بار بله. چرا یه فکری برای رو مادرت نمی کنی؟ کارش از این حرفا گذشته؟ براخر مادرته؟ میخوای بفرستشمری خوونه ایجایی ؟ فایده ای نداره او چه نگرفی؟ هنوز نه؟ مرد برگه می کنه. رو می ما برگ ای جادا میکنه اوو صندوق نصفوقوط رو بگیر دست وبارکاری نونه می میگه؟ نوبر برگر رو نمیگیره اگه میخوایم کاری برای ما بکنین بذاارین خواهر با خودم بیارم صبح که میان سرکار همش دلم پیش اونه برو قدرت میاد. نوبر با خوشحالی میره سابکار از این روحیه یه نوبر خوشش اومده و چشمش پر شادی شده نوبر خوشحال و شتابان میره. ساکار از پشت پنجره به نوبر نگاه میکنه نوبر و قدرت توی مینیبوس کنار هم نشستم به ظاهی رو نمیده خیلی کوچیکه از لایجان که اومدم یک روز منو ورداش کرد اینجایی که الان هستم حالا دیگه برداخت کنه خرابه شده ولی چون توی ترهه هیچ بهش دست نزده به من گفتار وقتی که تنها هستی همینجا برد داوت میدانه سمیشی تنها میمانم دیگه چرا بهت قدرت؟ اینا همه ریشو پاش می‌خاستی که من به قیافه‌م. اسم درانوس؟ نه. نه Candy. Is going to cauterize. یه وقتی اسمم من به من میاد. 13 سالم بود گفتن یه کارخونه‌ای هورمون بود، چی کوفته‌کاری بود، میگم به خاطر اون بیا هیچ‌وقت باز شدم. بینی بوس کنار جاده یه کوله‌پخانی نگه می‌داره. نوبر پیاده میشه. نوبر داره تو جاده میره طرف خونه یه ماشین میبینه که پارک کرده و برادر نوجوونش از راننده چیزی میگیره انگار بسته مواد مخدره دوسته! ماشین میره دوبار می دو طرف ناصر از لابلای ردیف آجرای چیده شده اونو دنبال میکنه بهش میرسه شروع میکنه به کتک زدنش یه مرد جوون پشت سرشون رو میفته. با لگد و کتک بندرشو میزنه اگه نه تو بیایم ایدان نه این و... ها آنچی میخوای بگی باید این خالی کنی من بگم اگه تالا ماندی به خاطر که من همه تو داشتم لازم. تو گیر لازم نکرده تو دلت بر من بسوزه. به خاطر اینقدر زریمانی که مثل سگ میدادن چراداری هم خونه تا برخق میکن اون بچه رو. از خونه میاد بیرون دزین بچه کجا رفت؟ میشینی کنار برادرش ناصر که بیرون غمگین نشسته رو آجورا نوبر گریه میکنه؟ اونجا مزرعه یه گجه فرنگی نوبر خوهر با خودش آورده خواهرشم هم روزری آبی پوشیده یه شاخی گل آفتابگردون هم دستشه آی روزری آبی نوبر دست خواهرشو میگیره و با شتاب به طرف سابکار میره یه بسته به طرف دختر میگیره معلوم نیست چیه نوبت با خوشحالی و شرم به مرد نگاه می‌کنه. اصلاً چه؟ سنو وا. بگذارونو که. خوشحال داری خونتونو بلبل می‌کنی؟ اینجای خونه مرد سابکاری، دختر جوونی عکس مادر مرحومش رو دستش گرفته. دخترها و دامادا و نوه‌ها دور آقا جون جمعن. بچه‌ها با اسباب بازیشون بازی می‌کنن. دختر. <تصفيق> خدا رحمتش کنه که اینا بیا بریم بابا جون. سن همینه. حالا بیران. <تصفيق> تا قه قدمتون خانه زنده باشی از قراگاه جای آوا اصفهون بچه‌ها خالیه ان شاء با فروغ و بچه میام خدمتتون ان شاء البته اگه آقا جون بیان تقا چرا کار داری؟ من من بچاپ کرکوده شما میرید دوبر تو را بیفتم خودتون برید به انسی بگین میخوابه نگران شماست میشینه میگه آقا جون غذا میخوره میگه الان آقا جون چه کار میکنه <تصفيق> تاثیر شماست که زن هاتون لوس و بار <تصفيق> آره <باقای> آقا <تصفيق> الله با این قدیش هممون رو اسیر کرده پا نمیشه بیاد پیشی یکی از ما تک و تنها قوغو تو این خونه اگه زیر بار میرفت که که کنه یه عاقل زن متدین با شخصیت پیدا کنیم و سیغه محرمیت بخونیم هم از تنهایی در می هم به کاراش میرسید اگه این یکی دو روز در هفته که شما میابیش سر میزنی خیلی خفتت کرده نه یا عزیز من نه یا اگه من ای بابا این چه وضعیه دلگرانیای ما یه حرفه زندگی بابا چیز دیگه است ما نمیخویش تو و بریم خب بریم میگیریم بخوابیم باشه خوشگلم خانم عزیز بابا کجا می‌خواد بسابه چه صدق الله علی العظیم و صدق خونماده جمع شدن سر مزار مادر دختر کوچیک که افتخار داره با پدرش صحبت میکنه دو قبل از این که خوابشون یه چادر نماز سفید سرشون رو دشاره میگردن به یه جایی کسی رو نمیدیدم ولی انگار میخواستن شما رو بهتش رو بدن این شد دارم قیل میکنم دارم میبوزم میرم میام اما اونش فایده نداره به تو فقط میتونم بگم آدم تو دم آخر هم نفذ میکن هیچکس تا تنها نباشی نمیتونی بفهمه تنهایی هنیچی. من خوب میفهمم خیلی خوب تو چرا؟ زنده باشه حسان بچهات با عذیتت میکنه؟ کاش عذیت هم میکرد اون زندگی میکنه. من هم سرم به خوب آگر خب شاید شده نه خوبتر از این حرفاست خوچه تو شما که همیشه همه چیتون جفت و جور بود با هم خوب زندگی میکردی. آقا جون خوشبختی اون چیزی نیست که بقیه از بیرون میبینم حالی همینه که هیچ قانونی نمی‌تونه بگه کی کنار چه کسی خوشبخت میشه دخترها و دامادا و اسخر آقا دارن تو حیات خونی آقا جون میزه سری میچینن و خودشون رو برای مراسم آماده میکنن انسی دختر وسطی مرد گلدون به دست از پله ها میاد پایی فرحاد فرحاد ولی اینو به زواسته میز از حالا که بی پلسته. نه یک که تم آقا جون آماده نمیشه؟ الان بیان خالب. بله خانم ایوه چیه؟ کفتم پولسوفی این تعداد نداشتن امسی خانم زیادم بد نیست تو اینه ملامین. قدره جان بجو مدر بجو, مدر. بجو مدیره رشمانو بیدار قدره نوبر دارن میوه میشورن اصلا ما بری چی اومدیم اینجا؟ من جدلم نمیخواست بیا چی بیداره که؟ باید پیرار سال که سال اولش بود می دیدی برای اون چی کار کرده هفشه بسیار بسیار خانون رو خوبید که بعد از اون خدا بیا مرز آقا این مرغ های کورچ رفت تو لاک خودش نوبر بیماله کبک در میندازه تو حوز و با نراحتی میره مراقب باش نشکنه. انسی شمدون میده به نوبر مرد در جل آینه خودشو مرتب میکنه زهر هی هر یه رو بیروب میاری یا باشه. دیگه لازم نیست دکترت سنم. أشعاع. نوبر با شرم برمیگرده طرف سالن. به هم دیگه نگاه می‌کنن. افراد مشغول چیدن میز شامند. دختراف و زنوی مهمون توی یه سالن نشستهن. آقاجون و مردای مهمون هم تو سالن کناری. گله خوشامد. کفال. بفرمایید. آقاجون پدر جون گریه آقا قدرت و زهرا و نوبر و خوهر کچوروش توی آبدارخونه کنار سماورای بزرگ و قریای چای مشغول کارن. تمام آقايان من قدرا تشکر از مولا السلام از من شب اعدان شب تو که تحملش یه بود به دست می تو مجلس زنونه انسی ها میشه میری طرف نوبر از سالون میارتش بیرون چیکار کنم زهر چی نیاره. زه را گفت کرد تا من ننگفتم هیچکسی نیارره؟ نوبر عصبانی سینی چایو میذاره رو میز آبدادکن دوباره دست خواهرش میکشه و میری. هدیه. کجا؟ ماشینا با چراغای روشن تو خیابونای شهر در حال حرکتن. دوباره و خواهرش تو اتوبوس نشستن و به طرف خونهشون میرن. اینجا محله نوبره. پلیسا مادر نوبر رو سوار ماشین میکنن و دارن میبرن برادرش هم هست. مردم جمع شدن. نوبر میرسه. خواهرش تو بغل نوبر خوابیده. <تصفيق> چی شده؟ بودن چیه؟ بری خوانتون به طرف خونه میره رضا مرد جوان دست خوهر نوبر رو گرفته و پشت سر شرکت میکنه اتاق اونا کاملا به هم نخته است نوبر دست خواهرشو رو گرفته و داره تو خیابونای شهر از مردم آدرس جایی رو میپرسه. نوبر با خواهرش اومده دمه در دادسرای مبارزه با مواد مخدر منتظر پشت در ایستاده بعد از او شده نوبر با خواهرش. خسته و کوفته توی جدی کوره آجورپزی به طرف خونه میرن سابکار کنار مزرعی گوجه فرنگی را میره نگرانه آقا خوبین. درست که میره بچه بیدرم میگیره بچه کجاست چند روز پیداش نیست از خوصه مادره مریض شده آخه گرفتنش نوبرم افتاده پی برادره طفل مسومونم با خودشون بردن قدرت هر روز میره سراخش. اینجا کوری آجورپزی کارگره مشغول کارن ازقر و قدرت در حالی که نوبر و خواهرش پشت سرشونن را میرن به سرعت از کنار مرد جوون همون رضا که یه قالب یخی گندر رو دوششه رد میشن رزا میبینه که سابکار کمی دورتر ایستاده و اینا همگی به طرف اون میرن سلام. تو چه لاغر شدی گندیش که ملاقاتی نبودیش شالش چی گفتن؟ اون که باید بمونه ولی ناصر رو میگم بار اولش باید تنبیه بشه تا بیاد تنبیه بشه بسید تو هرازر خراب شده رفته به کارش حالا که کانونه تو موازه به سنوبر با شالش بتر شه. از شنبه میام سر کار رزا با نراحتی به قالب یخ میکوبه و زیر چشمی به اونا نگاه میکنه سابکار مستقبه هم همینطور میکوبه روی یخ سابکار و اسقر و قدرت میان کنار ماشین تو چه داره میسوزو و پرپر میزن و هم نیست اسقر بله تو نمیخوای سر و سامو میگیری؟ قدرت با شرم چادرشو میکشه سرش اسقر به قدرت نگاه میکنه قدرت خانم هم به اسقر آقا انگار همدیگه همدیگر دوست دارن و در آرزوی استفاش با هم آره قدرت خان تو مینی بوس نشسته بقیه کارگران هستن دو تا از مردای کارگر به قدرت اشاره میکنن و میخندن. قدرت سگرمه هاش میده تو هم. مزرایی گوجه فرنگی قدرت با چوب افتاده به جون مرد دیروزی که توی سرویس داشت به قدرت میخندید. اونا حالا تو سر باشه، داشت اینه. به من چه داره؟ من چه مرگ شده؟ تا ببرش. زن و قدرت رو سرکارشون. ماشینی از کنار اسقر و کار رد میشه آره، شما تو دلت، کرده شاء خودم میارم، شوف خدا کردی؟ خیلی خوبیه میدونم آقا خدافکلی دلمون براش خیلی بسرسی ولی نمیتونم راستش میخوام با اجازهتون با قدرت تنه کبوتر خودمون راستی راست عالیه <تصفح> <تصفح> زن سالاریه سویت رو میگهده اسفر نوبار داره سر سنوبار رو میشوده کاش همینجا میماندی برای کار نشدیدی؟ هم از اینجا حسلم سر رفته هم از پیله های تو چهار میکنی من از سر دل خوشی اینجا ماندم؟ خواهیست که برم طرفهای خودمان دیگه بر نمیگرد اسفلم همینو میگفتیم پار وقتی برگشتم پیش خودم خیال میکردم این دفعه شاید بایسته نشه آب تشت خالی میکنه رضا میره نوبار داره موهای سنوبرشون نمیکنه قدرت لباسه رنگی پوشیده اومده سراغ نوبر دیگه میخوام عروض بشم اگر گفتی با همین از آقای ما دیگه هیچ مخت نگفت بودی به قطل این که من اونه بخواستم دیگه خبر نداشتم که خودشم من منو میخوا الا که شیر دیمیدی به ماماش فردا اما از خراغا میگه دا. هفته ای دیگه روش کن باید میگم بگم از آقا سلام خیلی سلام زفته جان آقا گفته وقتی تو رفتی خانه اسقر آقا خانوم نوبر خانوم بیاد برو بشینه سر جای تو توی اون خونه خوبه؟ نوبر خیلی خوشحال میشه نزرهی گوجه فرنگیه ماشین سابکا نگه میداره سابکا رو اصقر ناصر از ماشین پیاده میشد جبوتر ها بگو نوبر بیا نوبر جان نوبر با خوشحالی ناسه رو بغل میکنه سنوبرم میاد تو <تصح> مردستش با بشه میبونه بردست عسقر آقا سکون بخوره خودم حسابش میرسم خانی چود فردا اسباب کشی میکنی بیا اونجا که بوتر گفت نمیخواه این هرچی شما بگی. از قراغا داره وسایل نوبرو میندازه پشت وانتوار رضا با حسرت نگاه میکنه به نوبر و رفتنش مردم محله دارن با نوبر و ناصر و سنوبر خداحافظی میکنن ماشین حرکت میکنه و اونا میرن رزا با قصی سرشو به دیوار تکیه میده ماشین داره دور و دورتر انسی دختر وسطی آقا جون با عجلی میاد تو حیات خونه آقاجون از پله ها میره بالا در رو باز میکنه از میاد بیرون شبا که منو کشت چونتو بابا چی؟ ندرسین که زید بیخبر میمونم ازتون دلم هزار را میره سر نمیزنین میگین گرفتارم زنگ میزنم نیستی به خدا دیشب تا صبح خبم نبارد خواستم نیست به پاشم بیام پیشتون فراد نزاش دوامونم شد به من میگی بچه ننی عزیز این دوردون ای؟ اگه چیکار کنم؟ بیام یه من پیش شما. آخه چی شده؟ اون سالمدی من دختر دی نه؟ نگران گرونتونه؟ اگه خسته شدیم بریم پیش افتخار اگه کنسلین ب قرمتون دکتر. شما خیال میکننی اکیی پابلن گذاشت فقط باید موازهب فشار خون کلسترالش بود. یادتون میره؟ درد های دیگه هم هست که تو فرق آزماشگاهی نمی نویزم یادتون میره؟ ره محنو زنده نفس می کشم جون داره نوبر و سنوبر مدر ملاقبت مادرشون تو بقلی مادرش گریه میکنه گریه نکم گریه نکم ببینیش براتا آوردم بگیر رسیزه آدرس تازه منو دادم به دفتر نه نه نه سیوبرم ننه ننه عزیزک حالا کی هست یه آدم عزیزم میخواد بگیرتت نوبر بلند میشه میخواد شوهرم بده صافکار داری تلفونی صحبت میکنی خیلی مستره بود فکر کنید دختر خود من خانم اقبارین دلم میخواد یک کسی باشی که قاتیچه بدونه یه وقت وخ... خیال نکنین که دختره بی کیسو کاریه بلد. اگر اگر شما پسر رو پسندیدین خب قراره چه بذارین گوشی رو میذاره، پنجره رو باز میکنه، و داد می‌زنی کبوتر دو تا خانوم و یه مرد جوون با عصبانیت از حیات خونی اسقراقو دارن میرن به طرف در بله بخشی خانم اخباری این چه بی احترامیه من با آقای رحمانی گلهتونو میکنم من چند تا همه کارام گوشم که نه به این مورد دررسام اصلا درست نم. لطفاً اجازه باری خودتون ببخشید. ایشالا جلسه دیگه ببخشید. ببخشید. گوشه ی حیات نوبر رو می‌بینیم که با لجبازی و عصبانیت نشسته. آها پس اونها خواستهگار بودن و چاوتها این مسخره بازیو چی درآوردی؟ خب راضی نشد بیا دیگه چی بکنم که؟ نمیتونه چه دیگه بیاد اونجا بشینه؟ نوبر حاضر نشده بود بره رو ببینه. سابکار سوار بر ماشین داری میده طرف مزرانی گوجه فرنگی نوبر در حالی که یه جبه گوجه فرنگی رو دوششه داره میاد سابکار ماشین رو نگه میداره از ماشین پیاده میشه میره طرف نوبر نوبر نوار کاردانی نوبر جعبه رو زمین زمینو به عقب فرار میکنه آبای من شما به فرما دفتر من الان میام من شما میام برای شما میگم سابکار میره بفرما. قدرت تو دفتر سابکاره سابکار دست به پیشنی گذاشته و عمیقا رفته تو فکر انگار در درونی این مرد یه اتفاقی افتاده میگه نه این؟ نه هیچ کسی دیگه میگم آخره دختر جان آقا بد طوره که نمیخواد میگه جوانی نباید تنها باشی فردا پس وردم که مادر تو بیاد بیرون باز دوباره همان آشوامو کاسه مکاسه بالاخره یه کسی باید باشه پشت طور بگیره میگه مگه تا حالا چکار کردم بعد از اینشان میکنه میگم آ اگه اقا نبوززیره بال پر توره بگیره میگه و لامدیونه اونم اصلا رو حرف اقا حرف می میخوام بزنم اما اگر بخواد اصرار کنه، وادارم بکنه، دیگه اینجا و نمیشه. میرم. سر کار منم نمیاد. چه میدونم والله. میگه همین قدری که سایه آقا بالای سر من باشه، راضیه. هیچ چیز دیگ کار غمگین برگشت خونه از حیات رد میشه از پله ها میره بالا هلو اتخار بابای ب مرد گوشی رو میذاره و با ناراحتی سرشو میذاره رو بالشو گریه میکنه زنگ تلفن خونی سابکار همینجوری ادامه داره و سهل اونو میبینیم که کف اتاقش پخش و پلا شدن شلوار، پیراهن، کتاب، سجادی پهند شده ولی خودش نیست سلام انسخارا. نه والا هیچ خبری. منم موندم حیرون، همه کارا قاطی شده. اگر تا فردا نیومدند، بگید عباس آقا و فرادخان اینجا. فردا من نمیتونم جوابگو کو باشم. گوشی گوشی. آهای کجا؟ هاست، دستت پارنگا بدی چی؟ چطور میشه چک رو به تو تحویل داد، اما وارا تحویل نمیدی؟ باشه تا خود آقا بیاد. بزن بریم. اینجو خونیه دختر بزرگ آقا جونه. همه نگران آقا انسی و هم هستن شوهر انسی داره روزنامه میخونه هلو بفرماییم بازهم افتخاره سلام افتخار جان حالت چطوره نه نه هیچ خبری ن... نگران نباش به محض اینکه خبری بشه فورا بهت زنگ میزنم آره حتما قربان تو به آقای سم سلام برسون خدا حافظ من نمیدونم فایده اینجا موندن ما چیه اگه بخوا زنگ بزنه به خونه ما میزنه نه اینجا بریم بریم که این بچم داره ازگرد میشه نمیتونم نمیتونم چیه نمی همه کارات افراد خانوم الان وقتی تو جدی مزرعه غمگین نشسته و چشم جاده داره نوباری یه گوشه کس کرده گریه میکنه تو اینجا شکریه میکنی. دلم شده میزنه <تصفيق> شب آقا جون خسته ساک به دست حالی که کتشم رو دستشه میاد طرف یه خونه در میزنه در باز میشه دست یه زن از لای در ساک از دست مرد میگیره صفقار اومده تو حیات خونه رو پله نشستم. داره گریه میکنه اون این حرفا رو داره به نوبر میگه نوبر رو سری آبی سرشه بگو نه بگو نمیخوام بگو راحتم کن حیثیتم آورون من هم تا زندم مثل دخترای خودم از هدیگه داری بکنن شایدم عزیزتر از اونها از اولم نیتم همین بود یه گرفتار شدم یه ها شدم من بگو تو جای پدر منی بگوی هفا قبیه دلم نمیاد جیهونو تی به پای من حروم کنی اونم یه زندگی پنهونی ترس رسوایی سرزدن های گاه و بیگاه اگه راضی باشم چی باید بگم نه تو بچه ای مرد از رو پله ها بلند میشه دلم میخواد خیلی کاروارات بکنم اما حتی نمیتونم تو دوست جلتم بنمیسم نوبر میاد نزدیکتر میتوهم یعنی چی؟ وقتی قراره هیچ کس ندونه حلال همسر شما چی فرق میکن اسممو و جایی بنویسن یا نه؟ مرد میره نوبر میمونه صبح شده ماشینا توی خیابونای شهر در حال حرکت هم. اینجا خونی آقاجونه، نزدیک صبحه فروغ بیداره داره قرآن میخونه شاهرش و بچه هاش خوابن فروغ صدای در میشنوه میره طرف پنجره آقاجون میاد تو انسیم تو راه رو خوابیده بیدار میشه عباس عباس پاچه آقا جون سلام آقا سلام سلام سلام سلام آقا جون نگفته بودین مسافرت میری. باید میرم حزار ید. شرمداتونم خیلی خاصم. شوهر انسی سوئیت روو بر میداره. من دارم میرم. خاصی بیاا نخواستی تو هر وقتدل خواست همجا بمون آقا چون میاد تو اتاق خودش. انسی از فلله میاد به این دنبال شوهرش باچه کجا داری میبری؟ ویسادیشکا، وروا چوربی دارکون بریم. بچم آقا جون قاب عکس زنشو برمی داره. به اون نگاه میکنه اونو میذاره سر جاش. تو مزرعهی گوجه فرنگی نوبر از دور ماشین آقا رو می‌بینه. آقا جون کار زوره. باشو. رشید. مردارم بیا یا آب دست صورت چون میاد دم کارخونه نگه می داره یادت چه که بریم نهار دیگه میاد تو دفتر یه کلاسار میذاری جلوی دستش عینکشو برمی‌داری خودکارشو میذاری رو میز اسقر تازه میفهمید چی شده چشم کجا بودی همه رو لب کردی یه خرابات فاکتور مده سه همه در اومده جبوتر رو برو بارم تمام شان زاره مگه نه ایمده سر کار تعجب میکنه و یه لبخند میاد رو لبش با ناباوری به طرف در میره اینجا حیات خونی نوبره نوبر داره ملافایی شاسه شده رو رو بند آویزون میکنه باهاش بزرگ شدم. لب واکنه میفهمم چی میخواد بگه. مگه من خرم. ببین دختره چه جوری زیر است؟ حالا مگه چه داره که؟ ای بش. چه میدونم والا خدا آخرت همه بونه به خیر کنه. سنوبرم داره گلدونهای کوچیکی رو میچینه دوربر حوض بزرگ وسط حیات. نوبر بهش نگاه میکنه. یکی از گلدونه از دست سنوبر میفته وسط حس نوبر میخنده <تصفح> <تصفح> ماه <ماشی> <ماشی> ما توی آسمون از پشت عب میاد بیرون دامن لباس سفید نوبر و شلوار مرتب مرد رو میبینیم که کنار هم دادن بله، امشب اونا با همدیگه ازدواج کردن نوبر چند علنگو دستشه سر و صورتش زیباتر شده نوبر با مهربونی دست مادرشو میگیریم اینقدر خوشگل شدی دلم میخواست خودم عروسی بکندم عروسی نداشتم مگه من داشتم فکر پاملای بابات وقتی فهمیدن میخواد منو بگیره آقش کردن گفتن برای دختر مهتی تریاکی که انقدر حرف پشتشه کسی عروسی نمیگیره اونم که هیچی نداشت عوضش خیلی قد بود این خودت برای نوصه بافتم سم سنوبا برام دستاش ترک می‌خوره. برای خودش مردی شده. چه جوری اومد بیرون؟ اون زامنش شد. آدم خوبیه. کاش میگید همش. میای بیرو. سنوبارم چطوره؟ یادش که میفتم جگرم پاره پاره میشه. براش هیچ مادری نکردم. چی میگم؟ اینکه برای تو کردم. مر توی ایون خونه نشسته. سنوبر سرش رو گذاشتی رو پای مرد رو داره میخوابه نوبر ظرفای میوه و شیرینی رو گذاشتی تو سینی با دو تا استکان چای داره می طرف اونا من با بوجه فرنگی ها تو محتاب رای میگیرم تو محتاب چم چم خیرمز میشم قشنگ قشنگ. سینی رو میذاره زمین بشه سنوبر پوشو برو سر جد بخواب بلنشو خمشم اموشم دخترک آنم باید دارم بچه ها زمین میدارم دلنگرم میشن نوبر و مردو برمیداری که آویزون کنی تو راه میمونه مرد میاد طرفش کتو میدارم درمونه میاد دارم اما با اینو بردار ببر من درستش میگم درستش میکنه آقا جدید بده من فاکتور جدید میمنو حرکت ما راه خط خطی نکن نمیبره آقا سر سر ما سعی میکنی که اونها به تعهدشون خوب عمل کنن ولی نظارت مستقیم شما لازم شده اشتباهی چای فنی هم رسیدگی بیشتری اصلا میخد خ چه خبره واخداری اشتباه کرده برای من شاخ شونه میکشه. شاخ شونه میکشه. برای برای خلیقان. خوش اومدید. هفته یانده ی جلسه میذارم بیشتر باهاتون. خاش. اخداری من اشتباه کردم. میخواستم بهت بگم یادم آدم <تصح> آقا فوزلی نباش. چند وقت میخواستم یه چیزی به شما بگم. راستش دیگه تو کارخونه حرف منم نمیخونن. یه حرفایی میزنن پیچ میکنن. روز مرگم باشه اگر بخوام بیا روی شما رو ببینم آقا طور خدا چند بیشتر مواظب باشی انسی اومده خونه آقا جون داره کمود لباسه اون رو وارسی میکنه میبینه قاب عکس مادر روی میز خوابانده شده خونه نوبر ناصر از در میره بیرون شب شده ناصر رو سنوبر نشستن کنار باجی تلفن. نوبر توی باجه است ناصر آقا دیدی هیچی به کبوتر ببوی یه سری به من بزنی باشه دلم داود میگه خیلی سرحال نیستی میتونی چند روز سر نزدی؟ حساب دقیقه هاشون دارم نه نه دخترا بجوری با جوری پا میشن نمیدونم خیالاتی شدم هر جا میرم فکر کنم اما عالم آدم دارم آنه میپاه فرد به دیستری میزنم چش خلوم. نوبر از باجی میاد بیرون ستایی میره. انسیر آب پورتغال میگیده فروغم اینجاست هیچ نشونه نبود ولی من مطمئنم حس زنها جلوتر از چشمشو میبینه با اون حالتی که عباس زنی زد و گفت بناخره کاریه که شده فهمیدم قضیه جدیتر از این هرفاز یعنی چی؟ نمیدونم شب که آمدن بهت شب داره شب شدیم ماشین مردم خونه رو برم نگهو دیدم خدا خیلی بخورین اون جون <تصفح> <تصفح> <تصفح> نمیخواد برم دوست دارم برگردم کارخونه ال اونجا هر روز میزیدم میدونم خسته شدی از اینجور زندگی میخوام اینو اون موقع کارم رو بکنم همان هم بدونن زن تو اینه همه یادم این از قرار که بود دیگه اونو نکن بچه نزا بگم ب جووریبی هیچ هیچی اش ندارم نه خونه نه کارخونه نه پیش سر رشته کارم از دستم در رفته کاش نمی‌اومده بودی کاش نمیدیدمت کاش تو‌تر اومده بودی خانوم چشمای هر دوشون پر اشک میشه نوبت پیاده میشه میره مرد حرکت میشه. اینجا جدی کنار مزرعه است اسخار با کیسای پلاستیک میده اومد با جو بری خانم خرید دارم میرم برمیگردم با من کار دارم شبیه خود دیم چهش آقا انسیام هم عصبانی داره از پله ها با میاد بارید بچه ها برید چون گفتم برید از خرقا بیا بلا ببرو باش بسخونه زهران میبره با خونه نبودی؟ بروخانه میکنم بیا بلا بشین آقا گفتن شد دیدتر میان نگران نشین ببین از خرقا ما که برادر نداریم ولی تو که تو خونه ما بزرگ شدی عین برادر همه مایی. سلام انسی خانم. خب معلومه. خدا از بزرگی کمتون نکنه، فروخ خانم پس یعنی خوب و بد ما برای تو هم هست. خب همینطوره خانم حرف من سر آقا جونه. ما چیزایی شنیدیم که امیدوارم به حق باتن زهرا دروغ باشه. ولی چون تو از همه بهشون نزدیکتری میخوایم اگه موردی هست به ما بگی که زودتر فکری بکنیم چه موردی تو کارخونه آقا رو مثل تخم چشمشون دوست دارن خودتو به اون را نزن کدوم <تصفيق> را پاشو برو اون برو اون نون و نمک خونم را چشمتو بگیریشان ما همه چیزو خودمون میدونستیم فقط میخواستیم مطمئن بشیم که شدیم آخه خانم برای آقا خوبیت نه قرط زیادی میزنی برو ببینم از بلند میشه میره در رو میبنده اینجا خونه نوبره ببین ببین چه بروزی این مرد آوردی؟ چی شده که بوتن؟ هیچی بابا این ماره چه گرفته؟ یه چیزهایی بو بردن که شونزن اونجا جلسه گرفته. ای گرفتن این بمو گفتو بو گوی گردن اینو حول بردن شد بادایا به خیل بجرم آنه چه خبری که تو خالی می کنی؟ و خودش باید جاابدی خلافشه رفتار نکردی که. حالا کجا ؟ دلم شور میزنه میره اونجا برم شاید پیش از که برسه پیداش کنم ازخر رو باز میکنه و میره فروغ با سینی چای از پله ها میاد پایین میره طرف پدرش و مهمون ها. انسیام هست اونا همیگی با آقای رحمانی سرسگین. اگر ما بخوایم کیفیت جنسو بالا نگه داریم، خب قیمتش میره بالا. مشتری نداره اون وقت. اگه بخوام قیمت ثابت نگه داریم، خب سود نمیکنه. اگه درش ببندیم خب یه دانو گردن میفتن، خدا رو خوشه میاد. من یه جوری همینجوری کایدارم، باحال تعامل میکنیم آقا. اما سود نمیکنه چیزش. چطوری بابا؟ مرسی، خیلی ممنون. ابا زغلوس. خونه مادرشه. برچه که نیستم کجا هم؟ خونه ایسی هم چیزه؟ فراتانم نمیان بیاد چیکار؟ دردمون تو خودمون بمونه بهتره یعنی چی؟ آقای رحمانی ما امشب دوره هم جمع شدیم که اگر چنون که از دستمون کارم برمیاد و اونون ادای وظیفه انجام بدیم برچه موردی؟ شنیدیم براتون مشکلی پیش اومده خواستیم از زبون خودتون بشنویم چون سبیه ها خیلی نگرانه آقا رسول شما در پاکی و صداقت همیشه توی فامیز زبون زد بودیم به خونه خونوادت و وفادار بودیم چه در حیات مرحوم تلعت خانوم چه در قیاب ایشون والا شایعاتی شنیدم درباره یه دختر قربتی که گرفتاری برای شما با به وجود آورده حال شما بفرمایید ما چه کمکی میتونیم بکنیم مزخرف ها چیه؟ دری دریوری ها چیه؟ از شما درد نکنه فروخانو داری کلاه محکمه را میندازید تو چش مردم؟ گفت بزنین به باباتون؟ باباتونو به چند بکشین؟ هر دردی داشتین؟ نمیتونستید قبل از جار جاروزه اینه هماره خبر کنین به خودم همه صغیرم سقیه هم، خودم آردی خودم، خودم که, که برای من وکیل واسی فریم می بدین. این دختری نوبر کردنی کیه بابا؟ نگه که نمیدونین؟ نگه که نمیشتاسین؟ شما که تو عمرتون یک کلمه دروغ از دهنتون در نیمده. این دختری کیه؟ کیه که باید همه پشت سرتون بخندن؟ بگم یه دختری قربتی رو اقفال کرد؟ خدا منو مرگ بده من این هربارو رشتم <تصفيق> آقای رحمانی که همون سابکاره، همون آقا جونه یا همون شوهر نوبره با عصبانیت بلند میشه فرو قش میکنه از غر بیرون منتظر آقای رحمانیه آقای رحمانی با حال خراب از پلاها میاد پایین وای از حال میره آقا آقا دختره اومدن بیمارستان انسی به اصغر آقا نوبر حروسن از پله های خونش میاد به زنه نمی شب نمیفهمی جان نوبر طریش نیست یه خورده فشارش رفته بالای کمشب میمونه فردا میاد منزل دکترایون الان زخمی هست به خاطر خودش هم که شده نباید با اونا رو در رو بشی به خاطر خودش به خاطر خودش که حسرتم میمیرم اینсю فروق و شوهرهشون توی بیمارستان در حال حرکتن حاضرین بچه‌دادی و زن بالای سرش باشن ما باید ببینیمش خب معلومه الان داقه باید قبل از اینکه سرپا صرف بشه قاله قضیه کرد من زبون این جماعت خوب بلدم خودم میرم سراغش. من میگم با فراد خان برو من چه کارم خانم که برم مگه تا حالا کسی یک کرب چیزی به من گفته بود بپرم ما غریبه این خودم بودم. باید کار بایدیم سره بشه نوبر و سه نوبر و سه نوبر وسط حیات انسی در عصبی تو هیچا میگه خود من کلی دون نیگه عباس شوهر فروغم پس اینو کلی وزی اسکناس بنف... گذاشته لبه ی پنجره با اینا هم میتونی یه جایی رنگ کنی هم چند وقتی زندگیتون باهاش اش میگرده به شرط این که باشی و پنجشنبه که من بیام رفته باشه. قرار به رفتن باشه همین امشب میرم همین حالا انسی با خش میری طرف نوم به شرط این که خود رسول بخواد چه ها؟ رسول. اجارات میکشی دختری پاپاتی مادر من یوم باش زندگی که باشه اینجوری اسمی شو حالا تو بر من آدم شدی چه یعنی چه شما قراره نبوت ساکت باشی نوبار سنوبارو تو ما ببین چنا حالا ممکنه نتونه به زبون بیاره اما من شما که نباید ازش سوء استفاده کنیم همه کارگراش فهمیدن فامیلش فهمیده پشتش حرف در حالا واسه این پیرمرد خوبیت نداره ببین جانم از هر جا بیگیری به نفه بلا زیر این فشار دق میکنه بسته دیگه باس آقا بابایی من داره از بمیرون بخش ما داری برش مصداوی میخونی غلط میکنه نره ایسی بسته هایی اسکنس رو پرت میکنه جانمی مگه به خاطر همینه نبود که دیگه به همیخی خب بردار دیگه نه؟ من باید خودشو ببینم خودشو هاشی شهر تهرانی کنار خط راه آهن. احتار در حال عبوره با از اسخر که ناصر و سنوبر پشتش دیده میشن و نوبر هم نشسته داره از اونجا رد میشه آقای رحمانی از بیمارستان مرخص شده اسخراقا آقا اومده دنبالش میرن طرف ماشین ماشین کجا اول بریم خونه نوبر من من تکلیبم و دنیا و آدم ها شوشن میکنم آقا خودگیب نباشه بریم خونه خودتون بهتری یعنی چی؟ آخه خبه منتظرم با اجازه کی رفتن تو خونه من؟ چی شد از نوبار نوبر خونه نیم پیشه که بودن میری خودم برم سنوبر و ناصر منتظر نشستن کنار خط آهن کبوتر و از کنار ماشین آقای رحمانی از اسقر آقا بیقرار داری راه میره میاد طرف ناصر و سنوبر صورت نوبر رو میبینیم روسری آبی سرشی پلکاش رو کردی گوشی لبش هم زخمی شده آقای رحمانی با غم زیادی به نوبر نگاه میکنه فقط موندم ببینمت بعد برم بیران میگن یه قربتی پاپتی رو چه به اینکه جای طلعت خانم زن آقا رسول بشینه علی من که راضی بودم فقط حلال تو بمونم گفتن اولش اینطوریه کم کم زیر پاش میشینی که عقدت کنه بعدم یه طول پس میندازی و همه چیش میکشی بالا. یه کپ پول انداختن انجلام که بردار برو گفتم من برای چیزی نیومدم که به خاطرش برم من به خاطر کسی اومدم که خودش باید بهم بگیم برو زدم تو دهنم که هر پای گنده از دهنت میزنی جا بود که فهمیدم فرق این که اسم آدم جایی بنویسن یا ننویسن چی اینجا خونی آقای رحمانیه عباس آقا دامادش از پله ها میاد پایین. این میگن خیلی وقت رو افتادن ولی نمیدونم چرا همین نایومده ما یه چیزی میکنی کازم چه بعدو بیاد شد خیلی خیلی کاری که بشه شد حالا باشین وقت اومد برین جلو دستشو ببوسین از دلش در خیلی خوب بی توجه به بچه هاش و مهمان ها از پله ها میره بالا طرف اوتامش همه پایین پله ها جمع شد بای رحمانی راه میفته بقیه دنبالش. ما همینجا تحشف داشت باشیم چی شده؟ شما که بگفتیم موضوع حل شده که چی بگم والا چی بگم آقای رحمانی با یه پوشه زیر بقل از پله ها میاد پاین پوشه رو میذاره رو لبه پله سند ملک و املاکه دارو ندارم عرزودیتون من شما رو تخم چشمم بزرگ کردم مثل تخم و چشمم حفظتون کردم اگه به جای پدری در حقتون دشمنی هم کرده بودم با این کارای شما بیه حساب شدیم. شما برای حفظ حیثیت خانوادگی با ترس از بیاب روی پاره چوریoverline منو برد. میکنه و میره. می می رسول رحمانی امروز مرد. اینکه اینجا ایستاده میخواد با نوبر کردانی یا دختر قربتی پاپتی بیچ سوکار بمونه تا بمیره خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه خوشبختی تو دل آدمه دلی که خوش باشه خوشبختی عشق تو چشمای آقای رسول رحمانی حلقه زده دخترا و دامادا و مهمونا شرمنده سرشون رو پایین میدازن کنار خط راه آهن نوبر چمدان به دست با ناصر که دوتا بغچه دستشه و سنوبر که یه بخچ روکولشه دارن میرن قطار از راه میرسه اونا کنار خط میمونن قطار از جلوشون رد میشه از اون برای خط آهن ماشین آقای رحمانی رو میبینیم که داری میاد حالا صورت خندان و شاد نوبر رو میبینیم که داره به ماشین آقای رحمانی نگاه میکنیم